کتاب آه بازخانی مقتل حسین ابن علی علیه السلام چون جنگ برپا شد خداوند پیروزی را بفرستاد تا بر سر حسین بال بگسترد و او را مخیر گرداند میان فیروزی بر دشمن و لقای خیش حسین لغای خدای را اختیار کرد تایفه ای از جن برای یاری او حاضر گشتند و از او اجازه خواستند از نداد حسین به اصحاب گفت که رسول خدای به من فرمود ای فرزند تو را بر رفتن عراق مجبور سازند و آن زمینی است که انبیا و اوسیا یکدیگر را دیدار کردند در جایی که امورا نام دارد شهید گردی. با گروهی از یاران که از زخم آهن در خیش دردی نیابند. آنگاه این آیت تلاوت کرد. قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراهیم. گفتیم ای آتش سرد و بی آسیب باش بر ابراهیم. و دعا کرد جنگ بر تو سرد و سلام باشد. پس شادان باشید که اگر ما را بکشند ما نزد پیغمبر رویم. و تیر از آن قوم مانند باران بیامد و حمله آوردند. کشتدان در حمله اول از اصحاب حسین اینانند نعیم ابن اجلان، امران ابن کعب، هنزلت ابن عمر شیبانی، قاست ابن زهیر، ابن عتی، امر ابن شیعه، زرقامت ابن مالک، آمر ابن مسلم، سیف ابن مالک، عبدالرحمان عرهبی حباب ابن حارس امر جندعی حلاس ابن عم سوار ابن عبی امیر امار ابن عبی سلامه نعمان ابن ظاهر از همراهان امر ابن همق جبلت ابن علی مسعود ابن حجاج الله ابن اروه قفاری زهیر ابن بشر اماد ابن حسان مسلم ابن کسیر زهیر ابن عبدالله و عبیدالله پسران زید بصری ده تن از یاران حسین و دو تن از دوستان امیر و جمله چهل تن بودند چون هرر یزید مردم را دید مصمم بر قتل حسین شدند و فریاد او بشنید که می گفت آیا فریاد رسی هست که در راه خدا به فریاد ما رسد؟ آیا مدافعی هست که شر این مردم را از حرم پیغمبر بگرداند؟ به عمر سعد گفت ای عمر راستی با این مرد کارزار خواهی کرد؟ گفت والله جنگی کنم که افتادن سرها و بریدن دستها در آن آسانترین کارها باشد هر گفت این پیشنهاد که کرد که بگذاریم بازگردد قبول نمی کنی؟ عمر گفت اگر کار به دست من بود میپذیرفتم ولی امیر تو راضی نشد پس هر بیامد آمد و دور از مردم به کناری ایستاد یکتن از خاندان او با وی بود قرط ابن قیس به قرط ابن قیس گفت امروز اسب خیش را آب دادی قره قره میگوید والله به خاطرم گذشت و اندیشه کردم که میخواهد از کارزار کناره جوید و دوست ندارد من ببینم گفتم آب ندادم اکنون میروم و آن را آب میدهم پس از آنجای که بود دورتر شد و قسم به خدا که اگر مرا بر کار خود آگاه کرده بود من هم با او رفته بودم عبی جناب کلبی گفت یسارنام از بستگان زیاد ابن و سالم قلام عبید الله ابن زیاد از میان لشگر بیرون آمدند و مبارز خواستند حبیب ابن مظاهر و بریر برجستند حسین گفت بنشینید مردی از ما از بنی علیم که عبدالله ابن امیر نام داشت در کوفه فرود آمده بود و سرایی نزدیک چاه جوده همدان گرفته بود و همسر او از قبیله نمر ابن قاست با او بود نامش امه وهب بنت اید و این مرد در نخیله دید سپاهی را سان می دیدند تا به جنگ حسین فرستند از مقصد آنها پرسید و بدانست گفت به خدا قسم که من بر جهاد با مشرکان حریص بودم اکنون چنان بینم که جهاد با این مردم که تیغ بر رخ پسر پیغمبر کشیده اند سوابش بیشتر و رسیدن به آن آسانتر است از سواب جهاد با مشرکین پس نزد همسر خود رفت و آنچه شنیده بود و عزم کرده بود به او بگفت زن گفت درست اندیشیدهی خداوند تو را به ترین رعی دلالت کند همین کار کن و مرا هم با خود ببر شبانه بیرون آمد تا به حسین رسید و با او بود تا روز آشورا عبدالله ابن امیر کلبی برخواست و گفت یا ابا عبدالله رحمک الله مرا ده که به جهاد آنان روم حسین دید مردی گندمگون بلند بالا سخت بازو میان دشانه گشاده گفت گمان دارم ویرا کشنده حریفان خود اگر خواهی به جانب آنان رو پس بیرون آمد گفتند کیستی؟ نسب خود بگفت گفتند تو نمی شناسیم زهیر ابن قین یا حبیب ابن مظاهر یا برهیر ابن خزیر بیرون آیند و یسار پیشتر از سالم ایستاده بود کلبی گفت یبنز زانیه از جنگ با مردم ننگ داری؟ هر کس به جنگ تو آید به از توست و بر او بتاخت و تیغی بر او نواخت که در جای سرد شد و همچنان که با تیغ بر او میزد، سالم بر عبدالله حمله کرد و اصحاب حسین بانک برآوردند که آن غلام تو را در یافت عبدالله احتمامی بدون نکرد تا رسید و ضربتی فرود آورد کلبی دست چپ را سپر کرد انگشتانش ببرید. اما برگشت و شمشیر بر وی زد و او را بکشت و رجزگویان بی آمد و کارزاری سخت کرد و دو مرد دیگر بکشت. ام و زنش عمودی برگرفت و نزد شوهر آمد. می گفت پیش این پاکان ذریت محمد کارزار کن و جامعه شوهر را سخت چسبیده بود و می گفت تو را رها می کنم تا با تو کشته شوم. حسین زن را آواز داد و گفت خدا شما خاندان را جزای خیر دهد سوی زنان بازگرد که جنگ بر زنان نیست سوی زنان بازگشت حانی ابن حضرمی و بکیر ابن حی تیمی بر عبدالله تاختند و کار او بساختند امر ابن حجاج بر میمنه اصحاب حسین تاخت با آن کوفیان که همراه وی بودند و چون نزدیک حسین رسید اصحاب بر سر زانو نشسته نیزه ها را به اسبان افراشتند اسبان پیش‌نمای آمدند و سواران بازگشتند هنگام بازگشتن اصحاب حسین بر آنها تیر باریدند و چند مرد را بر زمین افکندند و گروهی را رنجور و خسته کردند مسروق ابن وائل حضرمی گفت من در آن لشکر بودم که به جنگ حسین آمدند با خود می گفتم در جلوی لشکر باشم شاید سر حسین به دست من آید و نزد عبید الله منزلتی حاصل کنم چون نزدیک حسین رسیدم مردی که او را ابن حوزه میگفتند گفتند پیش رفت و گفت آیا حسین با شماست؟ حسین هیچ نگفت. بار دوم پرسید و حسین چیزی نگفت. بار سوم گفت بگویید آری این حسین است حاجت تو چیست؟ آن بیشرم که گویی پوست سگ بر روی کشیده بود و آب در چشم نداشت گفت ابشر به نار بشارت تو را به آتش دوزخ حسین گفت دروغ گفتی من نزد پروردگارم میروم که مهربان است و شفاعتش پذیرفته تو کیستی گفت ابن حوزه حسین دست برداشت چنان که سفیدی زیر بغل او را از روی جامه دیدی گفت اللهم حزه الی النار خدایا به آتشش ببر پس ابن حوزه خشناک شد و خواست اسب را به جانب حسین به جهانت و در میان جویی بود پایش در رکاب بیاویخت و اسب او را بجنبانید که بیافتاد و پایش در مفاصل قدم و ساقران از جای به در رفت و جانب دیگر آویخته در رکاب بماند مسلم ابن اوسجه بروی تاخت و شمشیر بر پای راست او زد که آن را بپرانید اسب همچنان میدوید و سر او را بر سنگ و درخت می تا بمرد آنگاه حیوان بر او بگردید و با سم او را بکافت و پاره پاره کرد چنان که از او چیزی نماند مگر دو پایش من مسروق که شاهد واقعه بودم بازگشتم و سپاه را بگذاشتم از این خانواده چیزی دیدم که هرگز با آنها کارزار نکنم اندک اندک به حسین نزدیک شد مهاجر ابن اوز گفت چه اندیشه داری؟ میخواهی وی حمله کنی؟ هر جواب نداد و اندام او را لرزه گرفته بود مهاجر به او گفت در کار تو سخت حیرانم به خدا سوگند که از تو چنین موقفی ندیدم اگر مرا از دلیلترین اهل کوف پرسیدندی از تو در نمیگذشتم. هر گفت و الله خود را میان دوزخ و بهشت مخیر میبینم و بر بهشت چیزی نمیگزینم هرچند مرا پاره پاره کنند و بسوزانند انگاه اسب برانگیخت، دست بر سر نهاده و میگفت بار خدایا سوی تو بازگشتم توبه من بپذیر که حول و راعب در دل دوستان تو و فرزندان رسول تو افکندم و به حسین پیوست و به او گفت فدای تو شوم یبن رسول الله منم که راه بازگشتن بر تو بستم و همراه تو شدم و در این جای بر تو تنگ گرفتم نمی پنداشتم این مردم پیشنهاد تو را نپذیرند و کار را به دین جا کشانند به خدا سوگند که اگر دانستمی چنین شود که اکنون میبینم هرگز راه بر تو نگرفتمی اینک پشیمانم و به خدا از کارخیش توبه کنم آیا تو برای من توبهی بینی؟ حسین گفت آری خدا توبه تو را بپذیرد فرود آی؟ گفت اگر سوار باشم برای تو بهترم از پیاده بر این اسب ساعتی پیکار کنم و آخر کار من به نزول کشد و گفت چون من نخست به جنگ تو آمدم خواهم پیش از همه نزد تو کشته شوم شاید دست در دست جد تو زنم روز قیامت مقصود هر اول قتیل پس از توبه او بود که گروهی پیش از وی کشته شدند پس حسین او را ازن جهاد داد و گفت خدا بر تو ببخشاید هر چه داری به جای آورد هر جلوی حسین بی استاد و گفت ای اهل کوفه مادرانتان به عزایتان بنشینند اشک حسرت بر شما بارند این بنده ساله خدا را خاندید و گفتید در راه تو جان بازین چون آمد رهایش کردید و شمشیر بر او کشیدید نگاهش داشته اید و گلوگیر او شده اید از همه جانب در میانش گرفته نمیگذارید در این زمین پهناور خدا به سوی رود چون اسیر در دست شماست و بر سود و زیان خیش قدرت ندارد او را و زنان و دختران و خیشان او را از این آب فرات مانع شدید که یهود و نصارا و مجوس از آن نوشند و خوک و سگ این دشت در آن می غلطند. از تشنگی به جان آمده اند پاس حرمت محمد و ذریتش را نداشتید خدا روز تشنگی سیرا بهتان نگرداند گروهی با تیر به دو حمله کردند او پیش آمد و مقابل حسین ایستاد حور به حسین گفت وقتی عبیدالله مرا سوی تو روانه کرد از کوشک او به در آمدم از پشت سر آوازی شنیدم که ای حور شاد باش که به خیری روداری من سر به پشت گردانیدم و نگریستم کس ندیدم گفتم این چه بشارتی است من که به پیکار حسین میروم و با خود اندیشه نمیکردم که پیروی تو کنم حسین گفت به خیر باز رسیدی مردی از بنی تمیم که از فرزندان حارس ابن و نام او یزید بن ابی بود بسیار به خود مینازید و بادی در سر داشت می گفت قسم به خدا اگر حربن یزید را وقتی میرفت دیده بودم این نیزه را بر پیکر او فرو می بردم در این بین که مردم گرم کارزار بودند و حربن یزید به آن قوم میتاخت. و گوش و ابروی اسب او زخم خورده و خون از آن زخم ها روان بود حسین ابن تمیم با یزید ابن صفیان گفت اینک هر که با آن همه باد و دم آرزوی دیدار او داشتی و این حسین رئیس شرطه عبیدالله بود او را با عمر سعد فرستاده بود و عمر گروهی زبته را با نیروی شرطه به او سپرده بود یزید ابن سفیان چون این سخن او بشنید گفت خوب آمد روی به هر آورد و گفت ای هر میخواهی با من مبارزت کنی؟ گفت آری حسین ابن تمیم را شنیدند میگفت قسم به خدا گویا جانش در کف هر بود و پیمانه عمرش به دست وی پر شد هر مهلتش نداد حمل آوردن همان بود و کشتن همان. ایوب ابن مشرح میگفت من پی اسب هر ابن یزید را ببریدم. تیری بر زدم بیدرنگ اسب بلرزید و جنبشی کرد و از رفتن بماند. هر تیغ در دست مانند شیر از اسب به زمین جست. من کسی را به تردستی و چالاکی او ندیدم. پیران قبیله به ایوب گفتند تو او را کشتی؟ گفت نه به خدا دیگری کشت و دوست هم نداشتم کشنده او باشم. ابو پرسید چرا؟ گفت برای اینکه مردم او را از صالحان میشمردند و اگر در حضور خدا گناهکار باید بود همان حضور من در آن جایگاه و پی کردن بس است دیگر چرا به گناه کشتن یکی از آنان گرفتار آیم ابوالودا گفت چنان بینم که تو پیش خداوند به گناه کشتن همه آنان گرفتار باشی نبینی که تیر رفکندی و آن اسب را پی بریدی و باز تیر انداختی و آنجا بیستادی؟ یا تاختی و یاران خود را به تاختن واداشتی و مردم بسیار گرد خود فراهم آوردی؟ یا اصحاب حسین بر تو تاختند و تو را از گریختن ننگ آمد و دیگران از یاران تو نیز مانند تو کردن به سبب این کارها بود که حسین و اصحابش کشته شدند و شما هم در خونشان شریک شدید ایوب گفت ای ما مالا از رحمت خدا نومید میکنی اگر حساب ما را روز قیامت به تو واگذارند خدا تو را نیامرزد اگر ما را بیامرزی ابولوداک گفت همین است که گفتم هر رجز خواندن گرفت سوگند خوردهام که از شما بکشم پیش از آن که کشته شوم، و سوگند خورده ام که پشت به شما نکنم و سوگند خورده ام که پیوست شما را با ضربه شمشیر بزنم آن که عجزی از من ببینید و مهلت از شما بخواهم و سوگند خورده ام که از بهترین انسانها حمایت کنم او و زهیر ابن قین کارزاری سعب کردند اگر یکی حمله می کرد و گرفتار می شد دیگری میتاخت و او را میرهانی. و ساعتی چنین کردند اونگاه پیادوان بر هر حمله کردند و او را کشدند حسین پس از کشته شدن هر نزدیک او آمد و خون از او جاری بود گفت تو هری هر, هر آزاد مردی در دنیا و آخرت چنان که نامیدندد آنگاه این اشعار خواند. چه خوب است هر از قبیله بنی ریا در معرکه جنگ هنگام که نیزها به هم می‌خورد صبور بود چه خوب است هر حسین را به تن یار بود و آن که شمشیرها فرود می‌آمد جانش را در باخت برای او یوسف ابن زید از افیف ابن زهیر که در واقعه حاضر بود نقل کرد که یزید ابن معقل بیرون آمد و گفت ای برعیر ابن خوزیر کار خدا را با خود چگونه بینی؟ گفت به خدا سوگند که برای من خیر خواسته است و برای تو شر گفت دروغ گفتی و پیش از این دروغگو نبودی آیا به یاد داری که وقتی در محله بنی لوزان با هم می رفتیم؟ تو میگفتی عثمان برخیش ستم کرد و معاویه گمراه و گمراه کننده است و امام هادی و برحق حق علی ابن ابی طالب است بریر گفت گواهی میدهم که عقیده و قول من همین است یزید ابن معقل گفت من گواهی بر گمراهی تو میدهم بریر گفت خواهی با تو مباهله کنم و از خدای خواهیم لعنت خود را بر دروغگو فرستد و آن که بر حق است آن را که بر باطل است بکشد در یکدیگر آویختند دو ضربت رد و بدل شد یزید ابن معقل ضربتی سبک بر بریر زد و او را زیانی نداشت بریر بر او تیغی زد که خودش بشکافت و به مغز سرش رسید بغلتید گویی از اوج هوا به زیر افتاد و شمشیر بریر در سرش فرو رفته بود و می جنبانید که بیرون کشد رضی ابن منقذ بر بریر تاخت با او گلاویز شد و ساعتی با یک دیگر کشتی گرفتند. بریر او را بی و بر سینهش نشست. رزی گفت کجایند مردان میدان نبرد که مرا از چنگ این دشمن رهانند؟ که <اقا> ابن جابر ازدی نیزه به دست پیش آمد که حمله کند. من به او گفتم این بریر ابن خزیر قاری است که در مسجد می نشست و ما را قرآن می آموخت. التفاتی نکرد و نیزه بر پشت او نهاد چون بریر تیزی نیزه را بر پشت خیش احساس کرد به روی رزی افتاد و روی او را به دندان گرفت و طرف بینی او برکن. که اب ابن جابر با نیزه قوت کرد او را از سینه رزی به یک سوی انداخت و پیکان نیزه در پشت بریر فرو رفته بود با شمشیر او را بزد و بکشت گویا مینگرم آن مرد ابدی برخواست و خاک از قوامی افشان و میگفت ای برادر ازدی بر من انعامی کردی که هرگز فراموش نکنم یوسف ابن زید گوید به عفیف گفتم تو این سرگذشت را به چشم دیدی که بریر در مباهل غالب شد و برحق حق بودن امیرالمؤمنین مسلم گشت گفت آری به چشم دیدم و به گوش شنیدم وقتی که اب ابن جابر به منزل خود بازگشت زنش و خواهرش نوار بنت جابر به او گفتند تو دشمن پسر فاطمه را یاری کردی و سید قاریان را کشتی به خدا قسم دیگر با تو سخن نگویی مادر وهب ابن عبدالله کلبی گفت ای پسرک من بر خیز و پسر دختر پیغمبر را یاری کن گفت در این کار کوتاهی نکنم و این وهب نصرانی بود و او و مادرش به دست حسین مسلمان شده بودند و در پی او به کربلا آمدند وهب بیرون آمد و رجز میخواند و حمله کرد بکوشی تا چند تن بکشت نزد مادر و زنش آمد به ایستاد و گفت ای مادر آیا راضی شدی گفت راضی نمی‌شوم مگر اینکه پیش روی حسین کشته شوی زنش گفت دل مرا ریش مکن به مرگ خود مادرش گفت ای فرزند قول او را مشنو بازگرد نزد پسر دختر پیغمبر کارزار کن که فردا شفیع تو باشد نزد خدای تعالی بازگشت رو پیوسته جنگ میکرد تا نوزده سوار و دوازده پیاده را بکشت و بعضی گویند بیست چهار پیاده و دوازده سوار را و دستهایش ببریدند و او را دستگیر کردند و نزد عمر بردند عمر گفت چه سخت تازنده سواری و فرمود تا گردنش بزدند و سر او را سوی سپاه حسین پرتاب کردند. مادرش آن را برداشت و ببوسید و باز سوی لشگر عمر بینداخت. به مردی رسید او را بکشت. آنگاه با دیرک خیمه حمله کرد و دو مرد را بکشت. حسین گفت ای ام وهب بازگرد. تو و پسرت نزد رسول خدایید و جهاد از زنان برداشته شده است زن بازگشت و میگفت: خدایا مرا نومید مکن حسین گفت خدا تو را نومید نمی گرداند. زن وهب رفت و بالای سر وهب نشست خاک و خون از روی او پاک میکرد و می گفت بهش تو را گوارا با شمر او را بدید و غلام خیش را گفت با عمودی بر سر زن کوفت و او را بکشت و این اول زن بود که در لشگر حسین به قتل رسید امر ابن خالد ازدی بیرون آمد و به حسین گفت یا ابا عبدالله فدای تو شوم میخواهم به اصحاب تو پیوندم دوست ندارم از تو کناره گیرم و تو را تنها و کشته بینم حسین گفت پیش رو که ما نیز بعد از ساعتی به تو ملحق شویم پس امر و سعد غلامش و جابر ابن حارس سلمانی و مجمع ابن عبدالله با شمشیر بر دشمن تاختند و رجز گفتند و کارزار کردند. چنان که از همراهان و یاوران دور شدند و در سپاه دشمن پیش رفتند. دشمن گرد آنها بگرفت و از سایر اصحاب جدا کرد. پس عباس ابن علی بر دشمن تاخت. چون آنها پشت یافتند دشمن پهلو توهی کرد. و عباس آنها را از شنگ دشمن برهانی خسته آلان آمدند و چون باز دشمن نزدیک شد تاختند تا یک جا کشته شدند پس از امر خالد فرزندش بیرون آمد به جنگ و پیش رفت تا کشته شد سعد ابن هنزلیه بیرون آمد و او از سران سپاه بود می گفت تا به بهشت در آیم بر ضربه های شمشیر و تیر صبر میکنم ای نفس با رغبت بکوش برای رسیدن به آرامش و خیر بتاخت و جنگی سخت پیوست و کشته شد پس از وی عمر ابن عبدالله مزهجی بیرون آمد رجس خان و قتال پیوست تا مسلم زبابی و عبدالله بجلی او را بکشت نافع ابن هلال در آن روز نبرد میکرد و میگفت منم هلال جملی منم پیرو دین علی مردی که مزاهب ابن هوریس بیرون آمد و گفت منم پیروه دین عثمان نافع گفت توی پیروه دین شیطان و بر او تاخت و بکشتش